اعتراض مریدان در خلوت وزیر، جمله گفتنده دی وزیر انکار نیست، گفت ما چون گفتن اغیار نیست، عشق دیدست از فراغ تو دوان، آه آه است از میان جان روان، طفل با دایه ولی ولیک گریهدو گرچه نبد داند نیک. ما چو چنگیم و تو زخم میزنی زاری از ما نی تو زاری میکنی ما چو ناییم و نوا در ماز توست ما چو کوهیمو صدا در ماز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات برد و مات ماز توست ای خوش سفاحت ما که باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان ما ادم و ما هستی های ما تو وجود مطلقی فانی نما ما همه شیران ولی شیر علم ما از باد باشد دم بدم حمله شان پیدا و ناپیداست باد آنکه ناپیداست هرگز گمه باد باد ما و بود ما از داد توست هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را. آشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وامگیر. نقل و باده و جام خود را وامگیر. ور بگیری کیت جست و جو کند. نقش با نقاش، چون نیرو کند، من گرن در ما مکن در ما نظر، اندرک را مستخای خود نگر، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، نقش باشد پیش نقاش و قلم، آجز و بسته چو کودک در شکم، پیش قدرت خلق جمله بارگه آجزان چون پیش سوزن کارگاه گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. دست نه تا دست جنباند به دف، نطخ نه تا دم زند، در زر و نفر توز قرآن بازخان تفسیر بیت گفت ایزد ما رمیت از رمیت گر بپرانیم تیران نزماست ماست. ما کمان و تیر اندازش خداست این نه جبرین معنی جباری است ذکر جباری برای زاری است. زاری ما شد دلیل اضطرار خجلت ما شد دلیل اختیار گر نبودی اختیار این شرم چیست ویندریق و خجلت و آزرم چیست زجر استادان و شاگردان چراست خاطر از ها گردان چراست ور تو گویی قافل است از جبر او ماه حق پنهان کند در عبر رو ورطبوی قافل است از جبر او ماه حق پنهان کند در عبر رو هست این را خوش جوابر بشنوی بگذری از کفر رو در دین بگیروی حسرت و زاری گه بیماری است وقت بیماری همه بیداری است آن زمان که می شوی بیمار تو میکنی از جرم استغفار تو مینماید بر تو یه گنه گناه میکنی نیت که باز آیم اهد و پیمان میکنی که بعد از این جز که نب ودم کار گزین پس یقین گشتیم که بیماری تو را میدبخشد هوش و بیداری تو را پس بدان این اصل را ای اصل جو هر که را در دست او برده است بو هر که او بیدار تر پردر هر که او آگاه تر گرز جبرش آگهی زارید کو بینش زنجیر جباریت کو بسته در زنجیر چون شادی کنند کی اسیر حبس آزادی کند ور تو میبینی که پایت بسته بر تو سرهنگان شهر بنشستند پس تو سرهنگی مکن با عاجزان زان که نبوت تب خوئے آجز آن چون تو جبر او نمیبینی مگو بر بینی نشان دید کو در هر آن کاری که میل بدان قدرت خود را همیبینی بینی آن و در آن کاری که میلت نیست و خواست خیش را جبری کنی، کی از خداست، انبیا در کار دنیا جبریاند، کافران در کار عقبا جبری هند، انبیا را کار عقبا اختیار، جاهران را کار دنیا اختیار، زان که هر مرغی به سوی جنس خیش میپرد او در پس و جان پیش پیش کافران چون، جنس سجین آمدند سجن دنیا را خوشوین آمدند انبیا چون جنس الیگین بودند سوی الیگین جان و دل شدند این سخن پایان ندارد لیک ما بازگویی من تمامی غسته را